خوب. اما درس سوم اعلال و ابدال قلب الواو و الیائی همزتن تبدیل شدن واو و, و یا به همزه چه زمانی واو و یا تبدیل به همزه می در این درس توضیح می دهند الامثله سه گروه از امثله رو آورده مثل درس قبلی چون در سه جا واو و یا تبدیل به همزه می شوند امثله گروه اول اذا دعاک المستر فاستجب الدعاء کان عمر اذا قضا عدل في القضائه. و واذا وفا کان مثالا في الوفاء در این امثله ادعاء القضاء الوفاء می‌بینیم که حرف آخرشون تبدیل به حمزه شده اصل دعاء ماضیش دعا هست ولی این الف از واو قلب شده دعوه بوده قضاء هم پس اینجا بعد مشد دعای قضاء هم الفش از یا قلب شده قضاء یقضی قضایه که شده قضا ماضیش قضا هست اینجا هم باید می شد قضایه وفا هم وفایفی یا ای هست وفایه بوده شده وفا در ماضیش اینجا هم می شد وفایه ولی می بینیم که واغ در دعا دعاو و یا در قضای و وفای تبدیل به حمزه شده إذا صاد أحد بماله فكن صايدا بأدبك صايد صايد أجوف هست حرف الليرو يجد يه نبي بلي لا تسأم إذا حال حائل صاد صايد حال حائل إذا حال حائد حائد. حائل و سائد میبینیم که واب تبدیل چه شده است حرف ال کدوم واب در قوائد توضیح میدهد این نقطه رو میدونیم اجواف یا واوی هست یا یایی چه واوی باشد چی یایی طول هم واو و هم یا تبدیل به همزه می شود بعد از علف اسم فائل ساعد فاعل می بینیم که حرف ال تبدیل به همزه شده است ساعد چه واوی باشد چی یایی فرقی نمی کند وگرانا ساده اصش سباده بوده ساده یسودو که شده سائد تبدیل به همز شده در اسم فائل در قواهد توزیمی دهد حال شده حائل حاد شده حائد صابه صابه یسومو بشه سائم قال یقول قا ول در اصل ولی بشه قائل قال قائلول مثال گروه سوم از تاریخ صحیفتون او صحائف صحیفه مفردش هست صحائف جمعش در صحائف میبینیم که تبدیل به حمزه شده است به مصر ملجأ للعجاذ در صحیفه یا تبدیل به همزه شده شده صحائف در بمصر ملجه للعجائز لا تدخله إلا عجوز فقیره عجائز جمع عجوز هست واف تبدیل به همزه شده اجتهد عند كتابتك الرسائل أن يكون غرض الرسالة جلید رساله جمش الرسائل سجا تبدیل به همزه است که هر سجارو توضیح میدهد القوائد نه تقلب الواو هم زتا تبدیل میشود واظ و یا به همزه اذا تطرفت احداهما زمانی که یکی از دو یعنی واظ یا یا در طرف واقع شود بعد علف زائده بعد از علف زائده دوتا شرک در طرف و بعد از علف زائده دعا و بعد از الف زائده تبدیل به همزة شده قضاء یا بعد از الف زائده تبدیل به همزة شده الوفا در اسم بوده وفاي که یا تبدیل به همزة شده است این شد قائدای نهم کتاب اما قائده دهم ده تقلب وظو و یا او همزتان تبدیل می شوند قلب می شوند و ویا به همزه فی اسم الفاعل الاجوف سلاسی در اسم فاعل اجوف سلاسی اجوف سلاسی الذي وَسَطُهُ الْف که وسطش باشد اینجا هم وام ویا تبدیل به همزه می شوند گروه دوم، ساعد که ساعد بوده در اصل حائل که در اصل حاول بوده حائد که در اصل حاید بوده صاد یسودو ساود که میشه صاعد حال یحولو که میشه حاول که میشه حائل که در اصل بوده حاول ول هذا که می شود حاید در ها ید این هم قائده شماره ده همه کتاب و قائده 11 هم حرف المد زائدی فی مفرد مؤنثن حرف مد زائد حرف مد باشه واب و الیف و یا این سه حرف حرف مد هستند واب و الیف و یا و زائد هم باشه در مفرد مؤنث یوقلا و حمزتن تبدیل به همزه می شود حرف مد زائد تبدیل به چی می شود البته در مفرد با انس تبدیل به همزه می شود ازا وقع افل در جمعش بعد علف سیغت منتحل بعد از علف سیغه منتحل جموع سیغه منتحل اون هست که بعد از دو دوتا حرف یا بیشتر اومده باشد صحیفه مفرد مؤنث هست یا داره حرف مده زائد هست در جمعش متهلجبو اش میشه میشه صحائف عجوز حرف عله واو در جمعش و مفرد مؤنث هم هست عجوز دیگه در جمعش میشه عجائز رساله مفرد مؤنث هست الف هم داره که حرف ماده زائد هست این الف جبش تبدیل به همزه میشه و اون الفی که در رسائل هست اون الفه منتهى الجموه هست رسا رساله میشه رسائل پس این سه جا و یا تبدیل به همزه میشوند زمانی که در طرف باشد و بعد از الف زائد ماده باشد در اجواف سلاسی اسم فائل چه واوی باشه چی ای تبدیل به همزه و حرف مد زائد زمانی که در کلمه مفرد معنیس باشه تبدیل به همزه میشه در جمع منتهی جمهورش